افسونه افسانه به نام خدا یگان مهربان زیبا و توانا سلام بر شما عزیزان همراه. قصه و افسانه قدیمی ترین میراث فرهنگی بشره که عمری به درازای آدمی داره با مطالعه و یا شنیدن قصه ها و افسانه های ملل میشه درباره اندیشه و گفتار مردم اطلاعاتی رو کسب کرد الین پولین نویسنده بلغاری درباره قصه و افسانه اینطور میگه قصه ها و افسانه ها عجیب و غریب اما زیبا هستند اونها از غم انسان می کهند و رنج و سختی رو از یاد میبرند افسانه ها آدم ها رو وادار کنند تا برای لحظاتی خودشون رو فراموش کنن دردها و ناکامی های خود رو از یاد ببرند افسانهها ها مرهم دردهای بشرند برای همینه که مردم افثانه ها رو به وجود آوردن دوستان این بار میخوام افسانه آسیاب سهرامیز رو از سرزمین گرجستان براتون نقل کنم. این افسانه برگرفته گرفته از کتاب قصه ها و باورها به گردآوری و پژوهش دکتر احمد بیانی. امیدوارم شما عزیزان از شنیدن این افسانه زیبا لذت ببرید و نکات ارزشمند اخلاقی نهفته در دل افسانه ها رو به خاطر بسپرید. روزگاران گذشته در شهر کوچکی که از کنارهای پرخروش رودخانه ولگا چندان فاصله ای نداشت، دختر مهربانی به نام سوفیا زندگی می‌کرد. سوفیا سال‌ها سالها قبل پدر و مادرش را از دست داده بود و جز خدای مهربون کسی پشت و پناهش نبود. تنها سرمایه سوفیا، دخترک جوان افسانه ما، عمل کردن به سفارش های پدر و مادرش بود. پدر و مادر سوفیا قبل از مرگشون به اون سفارش کرده بودن که از تنهایی نترسه. با مردم مهربون باشه و در هر حال هدفش کمک به اونها باشه. دخترک افسانمون که گفتیم اسمش سوفیا بود، برای گذروندن زندگیش چند سالی در خونه ارباب که یکی از ثروتمندان شهر بود، کار میکرد. از اونجایی که ارباب و زنش آدمهای بسیار بدخواه و تمکاری بودن، راحتی و ثروت بیشتر خودشون رو در قبال کار زیاد سوفیا می دیدن. تا میتونستن با بهانه و ایرادهای مختلف آسایش رو از سوفیا می گرفتن و اون رو به کارهای سخت با می داشتین. آههای سوفیا چیغ کار مگه نگفتم میز و ها رو رتب کنی ها؟ جای من از دست این دخترتن چیکار چیکارکن؟ زحمت آفرینی شده. اتفاقا ما گوشتی بودیم که زحمت. velkan زر فرو. سیامیز از صندلیارو رو تاب کند. الان میخونه سر میره سر. سر. الان میام. ای سوفیا. داری چه غلطی میکنی؟ الان موقع مرا تاب میزو صندلیه. لباسای من او میخواد زد باش پدجام اه, اه خانم گفتن که میز و سندلیا رو مرحب کنه. میز و سندلیا رو بلکن لباسای من واجب تنه زد باش الان مهمون ها میان صافیا صافیا بله خانم زود بار از انبار کیسه گندم بیا را سیاب کن بعد کیک درست کنم خانم من دارم لباسای هرگاه با اوشو می کنم میرم این دختره چاش خانم الان میرم این دختره‌ی تمبل معلوم نیست کدوم گوری رفته. بله باهاله خانم، اینم کیسه گندم. تو کی گفت بریم بار ها؟ مگه نگفتم لباسای منو اتو کن؟ خانم گفتم برم از انبار کیسه گندم. دختر، یاد... من گفتم اول لباس آقا رو اتو کن بعد برو. خانم شما خودتون گفتین لباس آقا رو ویل کنم. خانم، تو اتوی لباس منو به آوردن یکیسه کیسه گندم ترجیح دادی؟ نه عزیزم. حرف این دختر دو دوبه همزن و باور نکن تو همیشه برای من اولویت داری آی صفی، این یادت باشه که توی این خونه همیشه اولویت با انجام کارای آغاز فهمیدی بله خانم آه. ببین نختر ما اینجا پول مفت نداریم به تو بدیم که تمبلی کنی و از زیر کار در بری بله با... من هیچ از ساکت شو زود باش تا مهمونا نیمدن اون لباسای من رو اوتو کن فقط حواست باشه اونا رو وگرنه با همین اتوس سر و صورتتو اوتو بیکنن چشم ب... با هست خانم م. پس اون کیک شکولتی چی شد الان مهمونم میان اصلاعی <صح noss> عزیزم ولان آماده میشه صوفی زود برو از فروشکای آقای گلوانی یه سوس انار یه بسته وانید و یه, یه شیش آبلیمون یه بسته آرد سخاری و یه بسته فلفل قرمز البته سس آلوی سبزم بگیر و زود برگ اینا خودشون به اندازه یه مغازه است؟ عزیزم لازمه تازه این دختری تنبل الباید یک کاری بکنه پول بی خود که نداریم بهش بدی البته که اینطوره ما این پولا رو مفت به دست نیابردیم خب صوفی این چیزایی که گفتم نوشتی؟ بله خانم نوشتم حواست باشه چیزی از قلم نیفته لیستم گم نکنیم چشم خانم چشم بکارت. سی نمیدونست سوفیا دستور ارباب رو اطاعت کنه یا کارها و سفارش های جور جورواجور زن ارباب رو انجام بده اون روز سوفیا بعد از اتو کردن لباس های ارباب به فروشگاه آقای گلاوانی که مرد بسیار مهربونی بود رفت تا چیزهایی رو که خانم ارباب سفارش داده بود تهیه کنه سلام آقای گلاوانی روزتون بخیر سلام سوفیا خوش اومدی چی لازم اه، خ... خیلی چیزا آه یا دخترم تو حالت خوبه؟ به نظر خسته می بله آقای گلوانی خیلی خستهم خانم ساتینی از صبح تو شب منو سر پا نگه می و دستورو جور و جور آه، می میدونم میدونم. من سالهاست که آقا و خانم ساتینی رو میشناسم. شنسم اونا آدم های نیستن و همه چیزو بسای خودشون میخوان بله همینطوره خب دخترم بگو ببینم چی میخواستی؟ آه اه این... اه این لیست چیزه که میخوام فقط به هر برگردم اون امشب مهمون آه از سای آماده میکنم سوس انار اینم شیشه آبلیمو لیمون وانین وانیل دیگه اب اساسه علی سبزن بزن این لطفا اینم سس آلوی اینم نون شیرینی نازکی تازه نه خانم شاطینی اونو سفارش ندادم. میدونم دخترم میدونم من این نون شیرینی رو از طرف خودم بهت هدیه میدم متشکرم ای گلابنی من با است که شیرینی نخوردم دختر یه بیچاره بیا بگیر همه چیزایی که میخواستی مواظب اون شیشه عب باش سوسا باش آقای مچکرم خدا گلاوانی خداحافظ خداحافظ صفیه مراقب خودت باش دختر بیچاره صوفیا <تصفيق> تمام چیزهایی رو که زن ارباب سفارش داده بود میخره و به سمت خونه راه میافته معلوم نیست این پرو کجاست چند بسته چیز خریدن که اینقدر وقت نمیبره اه اه اه سلام خود مستدینی اینا چیزایی که میخواستی هیچ معلومه تا حالا کدوم گوری بودی؟ ها؟ من فقط رفتم فروشگاه آقای کلوانی و که گفته بودین رو خریدن تا <تصفيق> جون خودت تو گفتی منم باور کردم ببینم اون چیه تو دستت خواهیم کردی؟ ها؟ بده ببینم هیچی خواهیم این یه هی... یه چی؟ ها؟ زود باش دستتو باز کن ببینم سود باش دمه خونو نونشیرینی نازکی. اینو از کجا وادی؟ این اینو یک گناوانی بریم هدیه داد هدیه <تصح> داد؟ آره تو گفتی منم باور کردم مم. بدش من ببینم زود باش ولی خانم مال خودمه من حتم دارم اونو یواشکی از مغازه آقای گلوانی برداشتی زدی به نه نه خانم اینطور نیست اونو بده به من زود باش من اونو ندوست و مال خودمه خودم اون گلوانی به هم داد من جروبست نکن دختر گفتم بدش به من بیده دست تو بس کن دختری دوست دختری رو داری با من مقابله می کنی سب کن الان نشون دختری بیستر و پای دوست خانم به خودم من دوست نیستم خوب حالا برو اون شیرینی رو با دستای خودت بند تو سطل آشغال زود باش مادر چی هستی بله خانم دختر خوبه اینطوری یادت میمونه که نباید دزدی کنی و آب روی خانواده ما رو پیش آقای گلاوانی ببریم <تصفيق> خانوم من اونو ندوزدیدم کن کنین رو میگم شما میتونین خودتون از آقای گلاوانی بپرسید دیگه تمومش کن دختر من حوصله جر رو بس کردن با تو کیو ندارم برو برو کیسه گندم ماسیاب کن یالا دست به جنبون چشمانم چشمانم <تص> ایهیا براتون بگم که سوفیا بینوا علاوه بر انجام کارهای خونه بیشتر روزها پشت آسیاب دستی مینشست و ساعتها با چرخوندن سنگ های سنگین اون گندم های خونه ارباب رو آسیاب میکرد سوفیا در موقع کار با آسیاب دستی ترانه های زیبایی رو که از مادرش یاد گرفته بود زیر لب میخوند و گاهی هم از سر دلتنگی و تنهایی اشک می ریخت. سوفیا بیشتر وقتا هم سفارش های پدر و مادرش رو به یاد می‌آورد و با یادآوری اونها خودش رو شجاعت‌تر احساس می‌کرد و انگیزه و علاقهش به کار و تلاش بیشتر می‌شد. روزها گذشت تا اینکه یک روز نزدیکی‌های غروب که سوفیا کار آسیاب کردن گندم‌ها رو به پایان رسونده بود و داشت آرد‌ها رو توی کیسه میریخت صدای پایی شنه. بله انگار کسی به اون نزدیک می شد سلام دخترم سلام پدر جا کاری داشتیم اجازه بریم کمکتون کنم اح اح اح اح اح اح اح ممنونم دخترم راه زیادی اومدم خیلی خستشون. پدر پدرجان میخوایین گندم رو آسیاب کنی؟ بله دختر جون چند روزه نونی برای خوردن ندارم و خیلی گرسیم باشه تا شما کمی استراحت کنیم من گندماتون رو آسیاب میکنم بعدم تنون رو روشن میکنم و برای نون تازه میدم ممنونم دکترم ممنونم تو دکتر مهربون و خوشقلبی هستی بله، سوفیا دخترک مهربان افسانه ما آسیاب دستی رو به کار انداخت و همه گندم های پیرمرد رو آسیاب کرد و بعدش هم همون طور که به پیرمرد گفته بود تنور رو روشن کرد و از گندم ها نون گرم و تازه پخت سوفیا با مهربونی نونهای تازه و داغ رو با آب خونک و غذایی که سهم خودش بود توی سفره پیرمرد گذاشت و از اون خواست که بشینه و غذایی بخوره آخه ممنونم دخترچو ممنونم چند روزه که هیچی نخ... هیچ چی نخوردم. هیچ. ولی خودت چی دکترم؟ گرسنه نیستی؟ نه پدر جان من سیرم. شما بخورید، نیست چنتو. خدا تو رو از بلاها حفظ کنه، دکتر جون. می بیا. می بی بیا اینو بگی. ای چیه؟ <تصفيق> او او او ای خدایه من چه رو سر یک پشنگی خوشد نیاد <تصفيق> مال من ای خیلی ای این خیلی قشنگی چگونه این زیبایی این هدیه منه برای مهربونترین دختر دنیا مانه این روسری خیلی زیبا قشنگی درست شنگی ها شبیه روسری مادرم آخی اونم همیشه روسری های گلدار سرش میکنم البته دکتر جون این روسری یه روسری معمولی نیست معمولی نیست؟ یعنی چی پیدا باشه؟ این دوسی یه خاصیت عجیبی داره. خاصیت عجیب؟ بله، خاصیت عجیب. خاصیت عجیب اون اینه که اگه موقع خواب اونو سرد کنی هر آرزویی به زبون بیاری اون آرزو برآورده میشه. واقعاً؟ <تصفيق> <تصفيق> یعنی یعنی هر چه آرزو کنم برآورده میشه؟ بله. دکترم هر آرزوی آه این سهلی خوبه من کلی آرزوی خوب دارم مثلا آرزو دارم که همه مردم همیشه شاید باشن هیچ کس گرزنه نباشه بارکاریه. آرزو دارم همه جو سلط باشه و پدر و مدرها همیشه در کنار بچه هاشون باشن یه آرزوی دیگه اینه که دوستان همیشه سلامت باشن و به لب خم بلب داشته باشن تو <تصفيق> دکتر خوشقل <تصفح> می بیاسی میبینین پدر جوان میبینین من چقدر آرزایی خوب خوب دارم <تصفح> بله دکتر جوان تو بهترین آرزا رو برای دیگران داری ماریکلا آفرین خب حالا بگو ببینم برای خودت آرزو داری حتما برای خودت هم کلی آرزو داری نه آها که دارم پدر جان امیدوارم به آرزوهای خوبت برسی دختر جون امیدوارم <تص> بعد از رفتن پیرمرد سوفیا که خیلی خسته بود تصمیم گرفت بخوابه چرا که فردا میبایست کلی گندم رو آسیاب کنه سوفیا قبل از اینکه به رخت خواب بره روسری گلدار آبی رنگ رو به سرش بست و توی دلش آرزو کرد که یه آسیاب جادویی داشته باشه آسیابی که برای چرخوندن اون نیاز به زور بازو نباشه سوفیا این آرزو رو کرد و بعدم پلکاش سنگین شد و به خواب عمیقی فرو رفت اون توی خواب آسیاب سهرامیزی رو دید که خود به خود میچرخه و میچرخه و میچرخه بیچاره، بیچاره، تونتا بیچاره، سوفیا توی خواب آسیاب جادویی رو روی اسبی گذاشت و با شتاب به محل کارش که همون خونه ارباب بود برد اما ناگهان پای اسب به در انبار خورد و سوفیا با تکون شدیدی از خواب پرید. چه چه چه قشنگی بود. خدای من حیف که اون آسیاب فقط یه خواب بود خدای من من خوبم یا یه آسیاب شدیه یه آسیاب شدیه واقعی اینجاست یعنی حدثه ای من برورده شده یه آسیاب واقعیه آره باید واقعی باشه من من, من خواب نیستم الان امتحانش میکنن خواب؟ Push. برای اطمینان خاطر مشتی گندم توی آسیاب ریخ و ترانه ای رو زیر لب زمزمه کرد. آسیاب سهرامیز خود به خود شروع کرد به کار کردن و در عرض چند ثانیه یک مشت گندم رو به آرد تبدیل کرد. سوفیا که از شادی سر از پا شناخت، بازم چند مشت دیگه گندم توی آسیاب ریخ و بعد همه گندم ها آرد شدن. بدون اینکه به آسیاب دست بزنه، در عرض چند دقیقه سوفیا آسیاب سهرامیز رو با خودش به محل کارش برد و دور از چشم ارباب و زنش اونو در گوشهی پنهان کرد. از اون روز به بعد آسیاب سهرامیز تند و تند کار میکرد و در عرض چند دقیقه کلی گندم آسیاب می کرد. البته صوفیان با خوندن ترانه های زیبا و دلنشین اونو همراهی می کم کم زن ارباب از سرعت کار آسیاب به شک افتاد مم. چی شده که این روزا این دختر اینقدر زود گندما را آسیاب میکنه اون که همیشه برای آسیاب کردن هزار تا آه ناله میکرد و یه ساعت طول میکشید تا یک گندم گندما آسیاب کنه آتمن کاسه زیر نیم کاسه هست باید هر جوری شده سر از کار این دختری مرموز در بیارم مم. آهای سوفی، سوفیا. بله خانم کهی داشتیم زود برو انبار و دو تا کیسه گندم بیار باید هر چه زودتر اونارو را آسیاب کنی فردا شب ارباب یه مهمونی بزرگ داره ببینم فکر میکنی بتونی چندتا تا کیسه رو تا فردا آسیاب کنی آ آ آ بله خانم میتونم میتونی؟ چجوری؟ خب من یک کاش میکنم نباشی ها یعنی زور بازوی تو توان آسیاب کردن این همه گندومو داره اونم با این فرصت کم اه، اه، خانم من دیشب خیلی خوب استراحت کردم و میتونم تا فردا یک سره کار کنم آها آه که اینطور اه، خب حالا برو وقتو تلف نکن برو چشم خانم الان وقتشه که اونو تعقیب کنم و سر از کارش در بیارم من زن زن آروم و با کنجکاوی سوفیا رو تعقیب کرد و موقعی که سوفیا وارد محل آسیاب کردن گندمها شد، زن ارباب پشت در پنهان شد و از سوراخ‌های جای کلیدی در سوفیا رو زیر نظر گرفت. سوفیا پشت آسیاب نشست و مقداری گندم از کیسه بیرون آورد و توی آسیاب ریخت و ترانه‌ی زیبا و دلانگیز رو زیر لب زمزمه کرد. در عرض چند دقیقه گندم ها آسیاب شدن زن ارباب از دیدن آسیابی که بدون زحمت دست کار میکرد به حیرت و شگفتی افتاد بیتر. بیتر. ای دختره مرموز پس آسیاب کردن گندما کاری این آسیاب سهرامی نه کار زور بازیتو. تو حالا دیگه این آسیاب جادویی جادوی من پنهون میکنی آ؟ صبر کن چنان بلایی سرت بیارم که مرغای هوا به حالت گریه کنن من زن اربابم. ولی <تصفيق> عزیزان، فردای اون روز سوفیا با خوشحالی در حالی که کیسه های گندم آسیاب شده رو یکی یکی حمل میکرد، وارد خونه ارباب شد و طبق معمول همیشه خاص کار روزانش رو شروع کنه. اما ارباب و زنش که حالا دیگه از وجود آسیاب سهرامیز با خبر شده بودن، طور دیگه ای با اون برخورد کردن. <تصفيق> <تصفح> اوه صوفی عزیزم تو چطوری اینمه گندم و ماسیاب کردی؟ یاده خیلی خسته شدی دخترم دیدی خانم من همیشه میگفتم صوفی ها دختر قوی و زرنگی و توی خونه ما خیلی زحمت میکشه آه عزیزم من که منکر زرنگی و زحمات سوفی جو نیستم منم میدونم که اون توی خونه ما خیلی زحمت میکشه و دختره قوی و زرنگیه میبینی که اون در عرض یه روز اون همه گندو واسی هم کرد شبکت میره هم شده همه درم کاسی داره این دخترم چی داری با خود زمزمه می کنی؟ چیزی شده؟ هیچی خانم داشتم روز داره می شمورده او عزیزم ما رو ببخش بکنی فراموش کرده بودیم امروز روز مرخصی تو بود روز مرخصی من؟ ولی خانم شما هیچ وقت به من مرخصی ندادین حتی وقتی که توی بیک افتادم، ما حسابی سرما خورده بوده آه صوفیه عزیزم اون روز رو فراموش کن بیا ببوزمت که میخواید عزیزم حالا که امروز روز مرخصی صوفیه از اجازه بدیم به خونش بره و خوب استراحت کنه آه, آه،, آه،, آه،, آه،, اه؟ منم هم همین نظر رو دارم خب سوفی جان برو خونه و یه کمی استراحت کن دلم برات تنگ میشه استراحت نه خونه من این روز کلی کار دارم آها آه آه نه نه نه دختر جون تو این همه گندم و تاسوب نشو آسیاب کردی انصاف نیست نه عزیزم نه تو باید بری یه کمی استراحت کنی بله بله برو دختر جان برو استراحت بله بابا منم از طرفو بشورم تازه شما مهمون دارین من باید همه جوری رو بکشم و گردگیری کنم نه سوفی جان نه کار همیشه هست تازه مهمونی رو گذاشتین برای دی الانم باید به دیدن عم نانا بریم و یه کمی نونه تازه و کیک شکلاتی براش ببریم. تو هم برو استراحت کن. اینجوری خیال ما هم راحت باشه. ولی خانم شما همیشه میگی من تنبلم و از. نه نه نان عزیزم من هیچ وقت این حرفو نزدم و نمیزنم. <headshot> بابا بگید تمومش کنید. خانم ز تا آماده شو بریم. عم نانا منتظره. بله. اینا چرا امروز رفتارشون اینجوری شده؟ یعنی فهمیدن که تو به رفتارشون بمب بد بوده؟ ولی نه دا دا جان با خودت چی داری میگی؟ چرا نمیری خونه؟ هیچی هی چشم ربا اله میره کنه بریم عزیزم همه منتظره بله، سوفیا در حالی که از رفتار متفاوت و عجیب ارباب و زنش به فکر فرو رفته بود با خودش قرار گذاشت که یک روز مرخصی رو به دیدن دوستانش بره و اونها رو در انجام کارهاشون کمک کنه و اما بشنوید از ارباب و زن ارباب بله، اونا بعد از رفتن سوفیا با عجله به سراغ آسیاب سهرامیز رفتن زود باش عزیزم یه مش بیار میخوام با چشمای خودت ببینی که این آسیاب جادویی چطور در عرض چند دقیقه همه یه رو آسیاب میکنه باشه باشه اینم یه مش گندوم. خب حالا باید چیکار کار کنیم هیچی عزیزم آسیاب خودش میچرخه خود به خود؟ البته که خود به اون یه آسیاب جادویه منم زن ارباب ما که گندم ها رو ریختیم پس چرا آسیاب نمیچرخه سبر داشته باش عزیزم چرا نمیچرخه ولی باید بچرخه بچرخ دیگه بچر بچرخ شاید باید گندم بیشتری بریزیم خب اون کیسه گندم رو بیار کیسه رو بیار باشه اینم یک کیسه دیگه اونو خالی و برو کنار ببینم این آسیاب لعنتی چه میکنه باشه لعنتی یعنی چی آه. چی شد چرا حرکت نمیکنه دختری ابله معلوم نیست چه وردی میخونه تا آسیاب حرکت کنه خب تو هم یه وردی چیزی بخون شاید را افتار. آخه چه وردی بخونم بذار ببینم اچی مچی لاوتر یری دیو نداره یری دیو دیو باید یه کاری کنیم این آسیاب باید حرکت کنه میگم آسیابو با دست بچرخون شاید به حرکت در بیاد اگه این آسیاب نچرخه حق این دختری جادوگر مرموزا میزنم کف دستش بابا صاحب باش بابا آتیش شانتش Oh no! Oh my god! I'm sorry I'm sorry I'm sorry Come back! Come back! I'm free! عرباب و زنش نمی که این آسیاب سهرامیز تنها با ترانه های زیبا و دلنشین دخترک افسانه ما به حرکت در میاد و با ریزش انبوه گندم ها آسیاب از داد و آتیش از اون زبانه کشید و ارباب و زنش در آتیش سوجویی و بدذاتی خودشون سوختن بله صوفیای مهربون و در بین دوستانش بود که خبر در آتیش سوختن عرباب و زنش رو شنید از اون پس صوفیا با کمال میل تمام گندم های مردم فقیر رو با همین آسیاب سهرامیز آسیاب می کرد و هر روز با کمک دوستانش برای گرسنگان شهر گرم و تازه می پخت و بین اونا تقسیم می کرد. و به این صورت خاطره پدر و مادرش رو زنده نگه میداشت. عزیزان همراه، افسانه ای رو که شنیدید افسانه آسیاب سهرامیز بود از گنجینه قصه ها و افسانه های مردم گرجستان بر گرفته کتاب قصه ها و باورها نوشته دکتر احمد بیانی افثانه های سهرامیز یکی از ترین و قدیمیترین افسانه های جهان به حساب میان که در اونها وجود عناصر واقعی زندگی کمتر به چشم میخوره و آرزوهای دور از ذهن انسان ها همراه با تخیلات مطرح میشن. افسانه های سهرامیز جنبه اخلاقی و تربیتی زیادی دارند و شخصیت های مثبت و نیکوکار پاداش خوشقلبی و تینت پاکشون را دریافت میکنند و افراد بدزاد به سزای اعمال بدشون میرسن و به نهوی مجازات میشن در واقع میشه گفت در بطن افسانه های سهرامیز نوعی تبلیغ و تربیج نیکندیشی و نیککرداری نهفته است این افسانه بر اساس مبارزه کردار نیک با نیروهای شیطانی استواره و در واقع بر این نکته تاکید داره که کمک به دیگران پیروزی بر مشکلات رو به همراه داره. این رو هم بگیم که آسیاب در این افسانه نماد و مفهوم گردش ایام و سپری شدن روزگاره و گندم هم اشاره به برکت و رزق و روزی و کار و زحمت امیدوارم از شنیدن این افسانه گرجی عبرت لذت برده باشین آسیا سهرامیز تنظیم برای رادیو زینت سالح بود راوی شهندخت نجف زاده بازیگران احمد گنجی فریبا متخصص کامیار محبی مهدی گیاهی کارگردان بهرام سروری افکتر نازنین حسنپور صدابردار حیدر صفدری تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افسان ها رنگی از زندگی زندگیاند افسون زندگیتون دلنشین و مانا تا افسانهای دیگر بتر